گفتگوی ایزابل با خود به انگام تماشای باران در ما وقتی روز یکشنبه مردم از کلیسا بیرون می آمدند یک بار زمستان غافل کرد شب یکشنبه هوا دم کرده و خفه کننده بود با این همه صبح یکشنبه هم کسی فکر نمیکرد که باران بیاید پس از مراسم اجاره ربانی پیش از آنکه ما زنها فرصت پیدا کردن چترمان را داشته باشیم بادی شدید تیره و سنگین وزیدن گرفت که با چرخشی گسترده و دایره وار گرد و قبار و آتش زنهای سفت ماه را با خود روبید. کسی که نزدیک من بود گفت چه باد نمناکی است و من حتی پیش از او میدانستم. از ای که ما پا به پله های کلیسا گذاشتیم حسی مبهم دلم را به داخت مردها با دستی به کلاه و دستمالی در دست دیگر به خانه های نزدیک دویدند تا از باد و طوفان غبارالود در امان باشند آنگاه باران شروع شد و آسمان به ماده لزج و خاکستری بدل شد که بالهایش در یک وجبی بالای سرمان پرپر میزد. زد بقیه صبح را من و نامادریم کنار نرده ها نشسته بودیم و از این که باران اکلیل کوهی و گل نرده تشنه و بی آب را در گلدانها پس از هفت ماه تابستان تفته و غبار سوزان جانت هازه می بخشید شاد و شنگول بودیم هنگام ظهر زمین از پیشش صدا بازی استاد و بوی خاک دگرگون شده و لبریز از علف بیدار و جان گرفته و رایه خونک و گوارای باران با بوی اکلیل کوهی در آمیخت وقت نهار پدرم گفت وقتی در ماه مهباران ببارد. نشانه آن است که فصل خوبی در پیش داریم. با لبخندی به نشانه فرارسیدن رسیدن درخشان فصل نو نامادریم به من گفت این حرف را در موعزه ها شنیدم. پدرم لبخندی زد و غذایش را با اشده فراوان خورد و حتی کنار نرده خاموش و با چشمانی بسته دراز کشید، تا غذایش سر فرصت هضم شود اما خواب نبود به نظر می آمد که در بیداری خواب میبیند تمام بعد از ظهر با آهنگی یک نواخت و با همان یک دستی و روانی که آبشار فرو ریزد باران بارید گویی تمام بعد از ظهر را با قطاری سفر می کردیم بیان که اعتنایی به باران بکنیم داشت در جرف نای حواسمان رخت نمی کرد. صبح زود روز دوشنبه، وقتی در را بستیم تا جلوی سوز برنده و بسیار سردی را که از سمت حیات یورش می‌آورد بگیریم، حواسمان از باران پر شده بود. و صبح روز دوشنبه، حواسمان از باران لبریز بود. من و نامادریم برگشتیم که نگاهی به باغچه بیاندازیم. زمین سخت و خاکستری ماهمه شپنگام به مادهی تیره رنگ و چسبنده مانند سوپی کم بدل شده بود باریکه آب از گلدانها به راه افتاده بود نامادریم گفت فکر میکنم که آنها در طول شب بیش از اندازه آب خوردند دیدم که دیگر لبخند به لب نداشت و شادی روز پیش هنگام شب به وغاری سست و کسل کننده تبدیل شده بود. گفتم، فکر می کنم حق با شماست. بهتر بود که به سرخ پوستا می گفتیم که گلدانها را تا بند آمدن باران توی ایوان می و آنها این کار را می کردند. در حالی که باران به درختی تناور تبدیل می شد که بر فراز درختان دیگر گسترده باشد، پدرم همان جایی را که بعد از ظهر یکشنبه نشسته بود اشغال کرد، اما درباره باران حرفی نزد. گفت، مثل اینکه شب گذشته خیلی کم خوابیدم، چون از کمر درد بیدار شدم. و همانجا جا کنار نرده نشسته، پایش را روی صندلی دراز کرده بود و سرش را به سوی باغچه خالی و اوریان چرخنده بود. فقط هنگام تاریک روشن غروب بیان آنکه لب به نهارش زده باشد گفت به نظر می آید که هیچ وقت هوا صاف نخواهد شد و من آن ماههای های گرم و سوزان را به خاطر آوردم ماه اوت را به یاد آوردم آن خوابهای های نیم روزی هولناک که زیر سنگینی لحظات تا سرحد مرگ وا رفتیم لباس به تنمان چسبیده و در بیرون هم همه سمج و کسل کننده لحظات را که هرگز تکان نمی خورد دیوارهای سراپا خیس و شسته و بند بند ستون ها را دیدم که همشان از آب پف کرده بود باغچه را دیدم که برای نخستین بار خالی بود و بوته ی یاسمن کنار دیوار را که یادآور خاطره مادرم بود پدرم را دیدم که در صندلی گهوار نشست ستون فقرات معیوبش را به بالشی تکیه داد و چشمان غمناکش در پیچ و خم باران گم شده بود یاد شبهای ماه اوت افتادم که در سکوت شگفت انگیزش به جز آهنگ زمین که بر محور خشک و زنگ زده ی خیش صدایی به گوش نمی رسید. ناگهان احساس کردم که در چنگال اندوگی سخت گرفتار شدم تمام روز دوشنبه درست مثل یک شنبه باران آمد اما اینک به نظر می آمد که طور دیگری می بارد. چرا که چیزی متفاوت و تلخ در قلبم راه می کشود. در تاریک روشن غروب صدایی کنار دستم گفت چه باران کننده ای؟ بیان که سرم را برگردانم و نگاه کنم، صدای مارتین را شناختم میدانستم که از صندلی که نزدیک من بود حرف میزند با همان لحن سرد و پرحیبتی که حتی پس از آن سپید دم غمناک ماه سپتامبر که قرار شد شوهر من باشد تغییری نکرده بود پنج ماه از آن هنگام گذشته بود حالا میخواستم بچهای به دنیا بیاورم و مارتین آنجا کنارم نشسته بود و میگفت گفت که باران خسته کرده است. گفتم خسته کننده نیست بلکه به نظرم با آن باغچه خشک و خالی و آن درختان بیبار و برگ که از حیات نمی تواند تو بیاید سخت خمنکیز است. آن وقت برگشتم تا به مارتین نگاه کنم اما او دیگر آنجا نبود. تنها یک صدا بود که میگفت انگار هوا هرگز صاف نخواهد شد و وقتی که به سوی صدا برگشتم با صندلی خالی روبرو شدم. صبح روز سشنبه توی باغچه گاوی پیدا کردیم. با آن بی و سکون سخت و سرکشانش به نظر مانند دماغی بلند و گلی می آمد. در گل فرو رفته و سرش به پایین خم شده بود. هنگام صبح سرخفوست ها کوشیدند تا با چوب و سنگ از باغچه برانندش اما گاو همانجا بی هیچ تشفیشی عبوس و گیز، با سمهای همچنان فرو رفته در گل ایستاده بود و سر گندش را باران میازورد سرخفوست ها چنان گاو را به ستو آوردند که کاسه صبر پدرم لبریز شد گفت، راحتش بگذارید، امان دور که آمده خودش هم میرود رود. دمدمه های غروب روز سشنبه، آب سفت و آزارنده شد. همچون کفنی و لفافهی که قلب را فرو پوشانده باشد. خونکی اوایل صبح به رطوبتی چسبنده و داغ مبدل شد. هوا نه سرد بود نه گرم بلکه از سرمایی تبالود آتشین آکنده بود. پا توی کفش به عرق می نشست. مشکل می شد گفت که چه چیزی بیشتر کلافه می کرد. پوست اوریان یا تماس لباس با پوست. خانه از جنب و جوش بازی ایستاده بود. توی ایوان نشسته بودیم اما دیگر مثل روز اول باران را تماشا نمی کردیم. دیگر چیزی به جز طرح درختان فرو رفته در مه نمیدیدیم با غروبی غمگین و دلتنگ کننده که شنان تأثیری از خود به جا می گذاشت انگار با رویای آدم بیگانه از خواب بیدار شده باشی میدانستم که سشن بست دولوهای سنت خروم را به خاطر می آوردم. آن دو دختر نابینایی را که رفته به خانه ما می تا برای من آوازهای ساد دلان سردند که تلخی و غرابت زود رس صدایشان حالتی حزین داشت بر فراز باران آوازهای کوتاه دختران نابینا را شنیدم و آنها را در خانه پیش چشمم مجسم کردم آرام قنوده و در انتظار بند آمدن باران تا بتوانند بیرون روند و آوازشان را سر بدهند. فکر کردم که آن روز دو قلوها آواز نخواهند خواند و نیز زن گدا مثل هر پس از خواب نیم روز به ایوان نخواهد آمد تا شاخهای ابدی از درخت بلسان گدایی کند آن روز برنامه غذای من به هم خورد هنگام خواب نیم روز نامادریم با یک بشخاب سوپ بیمزه و تکهی نان و یاد از ما پذیرایی کرد. اما در واقع ما تا غروب دوشنبه لب به غذا نزده بودیم و فکر می کنم از آن موقع به بعد دیگر دست از فکر کردن برداشتیم. باران ما را سست و فلج کرده بود و با حالتی سرشار از آرامش و تسلیم به خرابی و ایرانی طبیعت تن داده بودیم فقط در آن بعد از ظهر گاو بود که از خود حرکتی نشان میداد ناگهان صدایی سنگین و پرتنین درون گاو را به لرزه درآورد و سمهایش با فشار بیشتری در گل فرو رفت آن وقت تا نیم ساعت همچنان حرکت ماند انگار که مرده بود اما عادت زندهماندن عادت میخکوب شدن در حالتی خاص میان باران مانع افتادنش میشد تا اینکه آن عادت در برابر اندامش به زانو درآمد آنگاه پاهای جلوش را خم کرد رانهای تیره رنگ و براغش را هنوز با تمام نیروی اندوه بارش سر پا نگاه داشته بود و پوزه‌ی مستکش را در گل فرو کرد سرانجام در زیر بار سنگینی اندامش با حالتی وقارآمیز و تدریجی و خاموش به سقوطی تمام و کمال تن داد کسی پشت سرم گفت عمرش به سر آمد برگشتم تا او را نگاه کنم و توی درگاه زن گدای روز سشنده را دیدم که از میان طوفان آمده بود تا شاخه درخت لیموی بلسان طلب کند اگر روز چهارشنبه موقع رفتن به اتاق چشمن به میزی که به دیوار تکیه داده بودند و اسباب و اساس رویش تن شده بود نمی‌افتاد. و در سمت دیگر در دیواره و جانپنایی که انگام شب آمادش کرده بودند چمدان ها و صندوق پر از اسباب و لوازم خانگی را ندیده بودم شاید بان حال و هوا عادت می کردم. دیدن این صحنه احساس خلع هولناکی در من ایجاد کرد. در طول شب چیزی اتفاق افتاده بود. خانه در هم ریخته بود. سرخ بوست های بی و پاب با شلوار های تا سر زانو بالا زده داشتند اساس خانه را با اتاق غذاخوری حمل می کردن. در حالت آن مردها، در سعی و تقلاشان آن بیرحمی و تمرد بیودشان به خاطر ناگزیری و خفت ناشی از فرودستی در آن هوای بارانی آشکار بود. بی مقصد و بی اراده راه می رفتم. احساس کردم که به چمنی ویران شده مبدل شدم که در آن علف دریایی گلسنگ کاشته شده با غارچهای نرم و لزج، که با گیاهان کراحت آمیز نمسارها و سای سارها کودش داده باشند. در اتاق نشیمن در اندیشیان سحنه ویران از باب و اساس روی همتلن بار شده فرو رفته بودم که صدای نامادریم را شنیدم که از اتاقش داشت به من گوش زد میکرد که ممکن است سینه پهلو شوم. تازه آن وقت متوجه شدم که آب تا غوزک پایم بالا آمده است. آب توی خانه را افتاده بود. کفان را آبی راکت و مانده پوشنده بود. ظهر روز چهارشنبه هنوز آفتاب در گیر و دار طلوع کردن بود. و بنگام بعد از ظهر در ساعت سه کاملا شب شده بود. آفتابی نابنگام و رنگ باخته با همان آرامش و یک نواختی. و با همان تنین بیرحمانه باران در حیات تاریکی شتاب و زود نرم و دلتنگ کننده بود که در میان سکوت گواخیروی که روی سندلی های بغل دیوار مغلوب و ناتوان در برابر آشوب طبیعت غوز کرده بودند کم کم عمیختر میشد. در این هنگام خبرهایی از بیرون خانه می رسید. کسی خبرها را به خانه نمی آورد خود به سادگی درز می کرد دقیق و مجزا انگار این خبرها همراه گل و شلی که در خیابانها راه افتاده بود و اسباب و اساس خانه را با خود می برد همراه چیزهای جور و جور پس در دور دست و حیوانات مرده می آمدن. دو روز طول کشید تا اهل خانه ما از حوادثی که روز یکشنبه اتفاق افتاد وقتی که بارانگویی خبر از فصلی امید بخش میداد مطلع شوند خبرهای انگار با عامل محرک درونی طوفان به ما میرسید خبر رسید که کلیسا را آب گرفته و احتمال دارد که فرو بریزد آن شب کسی بیان که دلیلی برای حرفش داشته باشد گفت از روز دوشنبه قطار نتوانست از پل رد شود، مثل اینکه رودخانه ریلها را با خود پرده. و باز خبر رسید که زن بیماری توی رخت خوابش گم گور شده و آن روز بعد از ظهر در حالی که در حیات شناور بوده پیدا شده است. هراسان در چنگ وحشت سیل روی صندلی گهوار نشسته بودم. و چشمانم را آکنده از حس پیش مبهم به تاریکی نمناک دوخته بودم نامادریم در آستانه در ظاهر شد با سری بالا گرفته و چراغی در دست به نظر همچون شبه خانوادگی میآمد. چیزی که پیش از این از وحشتی در من بر زیرا من خودم در آن حالت فوق طبیعیش سعیم بودم به من نزدیک شد هنوز سرش را بالا گرفته بود و چراغ را در هوا توی ایوان در آب شلب شلب کنان پیش رفت گفت حالا باید دعا کنیم و من چهره خشک و پرچین و چروکش را تماشا کردم انگار تازه سر از قبر درآورده بود گویی که از مایه و ماده‌ای ساخته شده بود که با مایه و جوهر بشری تفاوت داشت. درست روبروی من با تسبیحی در دست گفت: حالا باید دعا کنیم. آب قبرها را شسته و حالا مردهای بینوا توی گورستان شناورند. شاید آن شب بندکی خواب به چشمانم راه یافته بود که ناگهان با بوی تند و نافظی. چون بوی جسدهای تجزیه شده از خواب پریدم. تکان سختی به مارتین دادم که کنارم خورناسه میکشید پرسیدم، تو حس نمی گفت، شیرا. گفتم، بورا. حتما بوی مرده هاست که توی خیابانه ها شناورند. از این خیال به وحشت افتادم. اما مارتین به طرف دیوار غلطید و با صدای گرفته و خواب گفت اینها ها ساخت و پرداختی خیالات توست زنهای حامله همیشه خیالات به هم میبافند سرگاه پنجشنبه بوها پراکنده شدند استفاصله ها از دست رفت تصور زمان که از روز قبل به هم خورده بود کاملا ناپدید شده بود پس پنجشنبه ای هم در کار نبود پنجشنبه به ماده ای مانند تبدیل شده بود که میشد راحتی آن را با دست دو پارش کرد تا به روز جمعه رسید هیچ کسان جا نبود نه مرد و نه زن نامادریم، پدرم، سرخ ها اجسامی لب مانند و دور و نامحتمل بودند که در مرداب زمستان راه می رفتند. پدرم گفت از اینجا تکان نخور تا به تو بگویم چه کار کنی صدایش دور و غیر مستقیم بود و انگار که با گوش شنیده نمیشد بلکه از طریق حس لامسه که تنها حس فعال بود درک و دریافت میشد. اما پدرم دیگر برنگشت در هوا ناپدید شده بود از این رو وقتی شب فرا رسید نامادریم را صدا کردم تا بگویم که تا اتاق خواب همراهم بیاید به خواب آرام و آسودهی فرو رفتم که تمام شب ادامه داشت روز بعد هوا باز هم همان طور بود بی رنگ بی بو و بی آنکه درجه حرارت محسوس باشد به محض اینکه از خواب بیدار شدم پریدم توی صندلی و همان جا بی حرکت نشستم چون چیزی مراهش دار میداد که هنوز بخشی از خداگاهیم کاملا بیدار نشده است. آنگاه صدای سود قطار را شنیدم. صدای کشدار و غمنگیز سود قطار به جای طوفان نشسته بود. پیش خود فکر کردم که جایی باید هوا صاف شده باشد و صدایی پشت سرم انگار در جواب فکر من گفت کجا؟ برگشتم و پرسیدم، آنجا کیه؟ نامادریم را با بازوانی زریف و بلند کنار دیوار دیدم که میگفت: منم. پرسیدم، صدایش را میشنوی؟ گفت، آره، شاید هوای حلوهاش صاف شده و ریلها را تعمیر کردند. آن وقت سینی را با صبحانه بخارآلود به دستم داد. بوی سس سیر و کره جوشیده میداد. یک بشخواب پر از سوپ بود با اضطراب از نامادریم پرسیدم که ساعت چند است و او به آرامی با صدایی که از تسلیمی فروتنانه قایت می کرد گفت باید نزدیک دوانیم باشد با همه گرفتاری قطار تأخیر ندارد گفتم دوانیم چطور توانستم این همه مدت بخوابم؟ گفت خیلی هم نخوابیدی بیشتر از سه ساعت نباید باشد و من لرزان احساس میکنم که بشخاب از میان انگشتانم میلغزد گفتم دو سی دقیقه روز جمعه و او با آرامشی بیرحمان افزود دو سی دقیقه روز پنج شنبه هنوز دو سی دقیقه ی روز 5 شنبه نمیدانم چه مدت در آن حالت خوابگردها فرو رفته بودم حالتی که در آن حوا ارزش و کارایی خود را از دست میدهند. فقط همین قدر میدانم که پس از ساعت های بیشمار از اتاق دیگر صدایی به گوشم رسید. صدایی که می گفت حالا می توانی تخت خواب را به این طرف بچرخانی صدای خسته‌ای بود اما به صدای آدم خسته نمی ماند بلکه به صدای کسی شبیه بود که دوران نقاهتش را می‌گذراند. آن وقت صدای آجرها را توی آب شنیدم پیش از آن که دریابم که در حالت افوقی افقی هستم سفت و سخت سر جایم نشسته بودم آنگاه احساس خلع عظیمی کردم خاموشی مواج و خشونت بار خانه راهز کردم ایستایی باور نکردنی که بر همه چیز اثر گذاشته بود و ناگهان احساس کردم که قلبم به سنگی منجمد مبدل شده فکر کردم که مردم خدایا من مردم توی تخت خواب تکانی به خود دادم فریاد کشیدم آدا آدا، صدای ناخوشایند مارتین از آن طرف جوابم داد نمی توانند صدایت را بشنوند آنها هنوز هم بیرون هستند تازه آن وقت بود که متوجه شدم هوا صاف شده و گرداگرد ما سکوتی گسترده می شود آرامش سعادتی جاودانی عمیق و رازامیز حالتی تمام و کمال که بیشتر به مرگ شباهت داشت آنگاه صدای پاهایی در ایوان به گوش رسید صدایی صاف و سرشار از سرزندگی برخواست سپس نسیمی خنک دیوار چوبی در را به لرزه درآورد. صدایی چون صدای در زدن برخواست بندامی توپر و شگفتنگیز مانند میوهای رسیده با سر توی آبنبار گوشه ی حیات افتاد چیزی در هوا حضور مردی آمری را که داشت در تاریکی لبخند میزد آشکار ساخت. خدای مهربان، با حالتی آشفته و سر درگم، از درامیختن و به خوردن زمان نندیشیدم. اگر حالا برای رفتن به شاع ربانی یک شنبه گذشته دنبالم بیایند دیگر تعجبی نمیکنم.